دوازده قانون دین در بازار قرون وسطا در سمرقند، شهری در واحی آسیای مرکزی، تاجران سوری ابریشم ظریف چینی را لمس می‌کردند. مردان تندخوی قبایل جلگههای وسیع، آخرین گروه بردههای زرد موی غرب دور را در معرض فروش می‌گذاشتند و مغازداران سکه سکه‌های درخنده طلا را در جیب‌هایشان می‌گذاشتند که بر آنها خطوط عجیب و غریب و نیمرخ‌های شاهان ناآشنا نقش بسته بود. اینجا در یکی از های اصلی آن دوران میان شرق و غرب، شمال و جنوب اتحاد بشری یک حقیقت روزمره بود. هنگامی که ارتش کوبلای خان خود را برای تسخیر ژاپن در سال 1281 آماده می‌کرد، روند مشابهی به چشم می‌خورد. سوار نظام مقل ملبس به پوست و خز با پیاده نظام چینی با کلاهای حسیری همراه میشدند. نیروهای امدادی ای مست با دریانوردان خالکوبی شده دریای جنوبی چین زد و خورد می کردند. مهندسین آسیای مرکزی با دهان باز به چاخانهای ماجراجویان اروپایی گوش میدادند و همه اینها تحت فرمان یک امپراتور واحد بودند اتحاد بشر همزمان به گونه دیگر در گرد کعبه مقدس در مکه خود می کرد. اگر شما در سال 1300 زائری در مکه بودید و به دور مقدسترین زیارتگاه اسلامی تواف میکردید، احتمالاً با گروهی از بین و ها برمیخوردید که ردایشان در باد تکان میخورد، چشمانشان از وجد میدرخشید و لبهاشان اسامی 99 گانه خدا را یکی یکی تکرار میکرد. شاید شما می یک شیخ سال خورده ی ترک از جلگه های آسیا را در مقابل خود ببینید که اصابه دست لنگان لنگان راه خود را می رفت و متفکرانه دست به ریشش میکشید. در طرفی هم قطعه ای تلا بر روی پوست تیره فردی می درخشید که می متعلق به گروهی از مسلمانان پادشاهی مالی در آفریقا باشد. عطر میخک، زردچوبه، هل و نمک دریایی از حضور برادران هندی یا شاید از جزایر مرموز ادویه در شرق خبر می‌داد. امروزه دین اغلب به عنوان منبع تبعیض، ناسازگاری و تفرقه تلقی می شود. اما دین در حقیقت در کنار پول و امپراتوری‌ها، سومین عامل بزرگ اتحاد بشری بوده از آنجا که تمام نظم‌های های اجتماعی و سلسله مراتب خیالی هستند، شکننده هم هستند. هرچه جامعه‌ای بزرگتر باشد، شکننده تر هم خواهد بود. نقش اساسی تاریخی دین این بوده که به این ساختارهای شکننده مشروعیتی فوق بشری داده. ادیان ادعا می‌کنند که قوانینشان نه حاصل حوث بشری بلکه حاصل یک اقتدار بالای مطلق است، این باعث می شود تا حداقل برخی از قوانین ای در ورای هر بحث و چالشی قرار بگیرند و این عملاً ثبات اجتماعی را تضمین می کند. بنابراین دین می تواند به عنوان نظامی از هنجارها و ارزشهای بشری تعریف شود که بر پایه باور به یک نظام فوق بشری قرار دارد. این امر حاوی دو میار متمایز از هم است. یک ادیان عنوان می‌کنند که یک نظم فوق بشری وجود دارد که آفرینده ها و های بشری نیست. فوتبال حرفه‌ای دید نیست، زیرا علی رغم وجود قوانین زیاد و آداب و رسوم عجیبش، هر کسی می‌داند که خود انسان فوتبال را ابدا کرده و فیفا می‌تواند هر لحظه اندازه دروازه را بیشتر کند یا قوانین آفساید را باطل کند. دو دین بر پایه این نظم فوق بشری هنجارها و ارزشهایی را مستقر می کند که الزامی می داند. امروزه بسیاری از قربیها به جن و پری و حلول ارواح باور دارند، اما این باورها منبع الگوهای اخلاقی و رفتاری نیستند و دین هم نیستند. علیرغم قابلیتی که ادیان در مشروعیت دادن به نظام سیاسی و اجتماعی گسترده دارند، اما همه آنها چنین قابلیتی را متحقق نساختند. دین برای متحد کردن یک سرزمین گسترده مسکونی مرکب از گروه های ناهمگون بشری تحت نفوذ خود می دارای دو ویژگی دیگر هم باشد. اول اینکه باید حامی یک نظم فراگیر فوق بشری باشد که همیشه و همه جا حقانیت دارد. دوم اینکه باید تلاش کند این باور را در میان همه مردم رواج دهد. به عبارت دیگر باید فراگیر و مروج باشد. شناخته شده ترین ادیان تاریخ مثل اسلام و آینه بودا فراگیر و تبلیغ کننده هستند. در نتیجه مردم به این گرایش دارند که باور کنند تمام ادیان مثل اینها هستند. در حقیقت اغلب ادیان قدیمی محلی و محدود به گروههای کوچک بودند و پیروانشان به خدایان و ارواح محلی اعتقاد داشتند و علاقه هم به ارشاد تمام انسانها نداشتند. تا جایی که میدانیم ادیان فراگیر و مبلق در هزاره اول قبل از میلاد ظهور کردند و ظهورشان یکی از مهمترین انقلابهای تاریخ بود که کمک بزرگی به متحد کردن بشر کرده. درست مثل ظهور امپراتوری های فراگیر و پول فراگیر. ساکت کردن برهها. وقتی روح روحباوری نظام اعتقادی مسلط بود هنجارها و ارزشهای بشری ناگزیر بودند دیدگاه و علایق بسیاری از موجودات دیگر مثل حیوانات گیاهان جن و پری و ارواه را هم در نظر بگیرند برای مثال یک گروه خوراکچو در دره گنگ شاید قانونی وضع کرده باشد که مردم را از قطع یک درخت انجیر تنومند خاص من می‌کند. تا مبادا روح آن درخت عصبانی شود و از آنها انتقام بگیرد گروه خوراکجوی دیگری که در دره سن زندگی میکرد شاید مردم را از شکار روباههای دم سفید بر حذر میداشت زیرا که یک روباه دم سفید روزی جای سنگ گرانبهای آتشفشانی را به یک زن دانای پیر نشان داده بود چنین ادیانی مایل بودند در چشماندازهاشان بسیار محلی باشند و بر ویژگی منحصر به فرد مکانها، اقلیمها و پدیده های خاص تاکید می اغلب خوراکجویان تمام زندگی خود را در محدوده هایی بسر میبردند که از هزار کیلومتر مربع فراتر نمیرفت ساکنان یک دره خاص برای بقای خود ناچار بودند از نظم فوق بشری حاکم بر دره سر درآورند و رفتار خود را بر آن اساس تنظیم کنند. بنابراین دلیلی نداشت تا بخواهند ساکنان دره دوردست را به پیروی از همان قواعد متقاعد کنند. مردم سند زحمت فرستادن مبلغینی را به گنگ نمی دادند تا ساکنین آنجا را قانع کنند که روباهای دمسفید سفید را شکار نکنند. به نظر میرسد که انقلاب کشاورزی با انقلاب دینی همراه بوده باشد. شکارگر خوراکجو گیاهانی جمع‌آوری میکرد و حیواناتی شکار میکرد که گمان میکرد همتراز با موقعیت خود انسان خردمند باشد. اینکه انسان گوسفند را شکار میکرد به این معنی نبود که گوسفند پستر از انسان است. به همان صورت که اگر ببر انسانی را شکار میکرد نمیتوانست به معنی پستر بودن انسان از ببر باشد. موجودات مستقیما با هم در رابطه متقابل بودند و در خصوص قوانین حاکم بر زیستگاه مشترکشان با هم مذاکره میکردند. اما کشاورزان بالعکس مالک نباتات و حیوانات خود بودند و بر آنها اعمال نفوذ می کردند و نمی توانستند خود را تا آن حد تنظر بدهند و با آنها که مای بودند تن به مذاکره دهند. از این رو اولین تاثیر دینی قلاب کشاورزی این بود که منزلت نباتات و حیوانات را از جایگاه اعضای برابر در سر یک میز گرد معنوی تنزل داد و به مایملک مادی تبدیلشان کرد اما این سرمنشأ یک مشکل بزرگ شد کشاورزان شاید می‌خواستند بر گوسفندانشان کنترل مطلق داشته باشند ولی این را به خوبی می‌دانستند که این کنترل محدود است آنها می توانستند گوسفند را در حصار محبوس کنند، قوچها را اخته کنند و میشهای مستعد را پرورش دهند اما نمی توانستند مطمئن باشند که میشها باردار می شوند و بررهای سالمی به دنیا میآورند و قادر نبودند از شیوع بیماری های همهگیر کشنده جلوگیری کنند. پس باروری گله را چگونه میشد تضمین کرد؟ یک نظریه غالب درباره منشه خدایان این است که خدایان از این رو اهمیت پیدا کردند که برای این مشکل راه حل ارائه دادند. وقتی نباتات و حیوانات توانای خود را برای سخن گفتن از دست دادند خدایانی چون الهه باروری، خدای آسمان و خدای علاج جایگاه مهوری پیدا کردند و نقش اصلی آنها میانجیگری میان, میان انسانها از یک طرف و نباتات و حیوانات خاموش از طرف دیگر بود بسیاری از اساتیر باستان در حقیقت قراردادی شرعی است که انسانها در آن وعده پرستش جاودانی خدایان را می‌دهند. و در ازای آن اربابی بر نباتات و حیوانات را طلب می کنند و اولین فصول کتاب پیدایش یک نمونه برجسته است. تیه هزاران سال پس از انقلاب کشاورزی، مراسم عبادی عمدتا مرکب بود از قربانی کردن گوسفند و اهدای شراب و شیرینی به قدرتهای الهی که در مقابل وعده فراوانی محصول و باروری گله را میدادند. انقلاب کشاورزی در آغاز تأثیر بسیار محدود تری بر جایگاه دیگر اعضای نظام روحباوری مثل سخره ها، چشمه ها، ارواح و شیاطین داشت. اما حتی اینها هم به تدریج جایگاه خود را به نفع خدایان جدید از دست دادند. مادامی که مردم تمام عمر خود را در حیطه مناطق محدود به صدها کیلومتر مربع سپری می کردند، ارواح محلی اکثر نیازهایشان را برآورده می کردند. اما با گسترش پادشاهی ها و شبکه های بازرگانی، مردم نیازمند ارتباط با موجودیت شدند که نیرو و اقتدارشان تمامی یک پادشاهی یا حوزه تجاری کامل را در بر بگیرد. تلاش برای پاسخ دادن به این نیازها به ظهور ادیان تعدد پرست منجر شد. در که این عدیان این بود که جهان را گروهی از خدایان قدرتمند مثل الهه باربری، خدای باران و خدای جنگ اداره می کنند. انسان ها می توانستند به درگاه این خدایان التماس کنند و خدایان چنانچه پرستش می شدند و قربانی دریافت می کردند، زمینه فرستادن باران، پیروزی و سلامتی را فراهم می ساختند. با ظهور تعدد پرستی، روحباوری به طور کامل از بین نرفت. اهریمنان، اجنه، ارواح، سخره ها، و درختان مقدس کماکان همچون بخشی اساسی از تقریبا تمامی ادیان تعدد پرست باقی ماندند. این ارواح بسیار کم اهمیت تر از خدایان بزرگ بودند، اما برای نیازهای دنیاوی بسیاری از مردم عادی کفایت می کردند. هنگامی که شاه در پایتخت خود دهها ها قوچه پروار را برای تقدیم به خدای بزرگ جنگ قربانی می کرد و برای پیروزی بر بربرها دعا می کرد، کشاورز در کلبه خود شمعی برای ساهره درخت انجیر روشن می تا پسر مریضش را شفا دهد. اما بزرگترین تاثیر ظهور خدایان بزرگ نه بر گوسفند و اهریمنان بلکه بر جایگاه انسان خردمند بود، روح باوران گمان می‌کردند که انسانها تنها یکی از انبوه موجودات دنیا هستند اما از طرف دیگر تعدد پرستان بیش از پیش دنیا را انعکاس روابط میان خدایان و انسان‌ها می‌دیدند عبادتها، قربانیها و گناهان و اعمال نیکوی ما سرنوشت تمامی محیط زیست را تعیین می‌کرد یک سیل سهمگیر میتوانست میلیاردها مورچه، ملخ، لاکپشت، بوز کوهی، زرافه و فیل را نابود کند، فقط به این دلیل که مشتی انسان ابله خدایان را خشمگین کرده بودند. در نتیجه تعدد پرستان نه تنها مقام خدایان بلکه همچنین مقام انسان را هم ارتقامی دادند. از یک هم اقبالتر نظام روح باور قدر منزلت خود را از دست دادند و در نمایش بزرگ رابطه انسان با خدایان و به چیزهایی زائد و تزیینات خاموش پشت صحنه تبدیل شدند. مزایای بت دو هزار سال شستشوی مغزی یگانه پرستان باعث شده تا اغلب غربی ها تعدد پرستی را یک بودپرستی کودکانه و جاهلانه بدانند. این یک تلقی کلیشه نادرست است. برای درک منطق درونی تعدد پرستی ضروری است تا آن تفکر مهوری را که اعتقاد به خدایان متعدد را تقویت می کند درک کنیم. تعددپرستی لزوما وجود یک قدرت یا قانون واحد را که بر تمام کائنات حاکم باشد زیر سوال نمی برد. در حقیقت اکثر ادیان پرست و حتی روح باور به وجود یک قدرت نهایی در پشت تمامی خدایان مختلف اهریمنان و صخره های مقدس باور دارند. در تعددپرستی یونان باستان زئوس، هورا، آپولو و همکاران آنها تابع یک قادر مطلق و نیروی جهان شمول به اسم سرنوشت بودند. خدایان شمال اروپا هم تابع سرنوشت بودند که آنها را محکوم به هلاکت در نبرد راگناروک، نبرد نهایی میان خدایان و نیروهای اهریمنی کرد. در دین تعدد پرست یوروبا در غرب آفریقا تمامی خدایان از یک خدای اعظم یعنی اولودوماره متولد می شدند و تابع او باقی می ماندند. در دین تعدد پرست هندو یک اصل واحد به اسم آتمان خدایان و ارواح بیشمار بشر و جهان فیزیکی و زیستی را در کنترل خود دارد آتمان، ذات جاودانی یا روح تمامی کائنات و همچنین نام افراد و پدیده هاست. بینش بنیادین تعددپرستی پرستی که آن را از زیگان پرستی متمایز می کند این است که قادر اعظم حاکم بر جهان بری از منفعت طلبی و تعصبات است و به این اعتبار گرفتار امیال دنیاوی و هواعج و نگرانی های بشری نیست. یاری طلبیدن از این قادر متعال در مورد پیروزی در جنگ یا کسب سلامتی و یا بارش باران بیهوده است. زیرا از منظر اقتدار جهانی و فراگیر او، پیروزی یا شکست پادشاهی خاص، شکوفایی یا خشکسالی شهری معین، شفا یا مرگ فرد خاص هیچ تفاوتی برایش ندارد. یونانی ها فدیهی خدای سرنوشت نکردند و؟ هندوها هم معبدی برای آتمان نساختند تنها للیل برای نزدیکی به قادر متعال عالم میتواند نفی تمامی امیال و پذیرش خیر و شر در کنار یکدیگر باشد حتی پذیرش فقر و ثروت و بیماری و مرگ بدین ترتیب بعضی از هندوها که به سادهوس یا سانیاسیس شهرت دارند زندگی خود را وقف یکی شدن با آتمان می کنند و به این طریق به روشنگری دست مییابند آنها در تلاشند تا جهان را از زاویه این اصل بنیادین بنگرند تا دریابند که از این چشمانداز انداز تمامی امیال دنیوی و طرزها بی معنی و پدیده‌های زودگذر هستند اما اکثر هندوها سادهس نیستند آنها عمیقا در منجلا به دلمشغولیهای دنیوی گرفتارند و در آنجا آتمان چندان کمکی نمیکند در چنین مواردی هندوها برای طلب یاری به خدایانی با نیروهایی محدودتر متوسل میشوند مثل خدایانی چون گانشا لاکشمی و ساراسواتی درست از آنجا که نیروی این خدایان محدود است و عالمگیر نیست، دارای علایق و تعصبات هستند. از این رو انسان ها می توانند با این قدرت های محدود وارد معامله شوند و بر کمک های ایشان تکیه کنند تا در جنگ پیروز شوند و از بیماری نجات پیدا کنند. اگر زمانی شروع به تجزیه قدرت فراگیر یک منشاء برتر کنیم، لزوماً به چند خدا می رسیم و کسرت خدایان از همین جاست. دیگرش تعدد پرستانه بر پذیری و تحمل پذیری دینی تأثیر بسیار زیادی دارد. از آنجا که تعدد پرستان از طرفی به یک قادر متعال و کاملا فاقد منفع و از طرف دیگر به انبوهی از قدرتهای محدود و جانبدار معتقدند مشکلی برای پیروان یک خدای معین وجود ندارد تا وجود و قابلیتهای خدایان دیگر را بپذیرد. تعدد پرست ذاتن بی است و به ندرت، ملحدان و بی را مورد آزار قرار می دهد. حتی وقتی تعدد پرستان امپراتوری های بزرگ را فتح کردند، سعی نکردند دین خود را به مغلوبین تحمیل کنند. از توده‌های تحت حاکمیت در سراسر امپراتوری توقع می می‌رفت تا به خدایان و شعائر امپراتوری احترام بگذارند زیرا این خدایان و شعائر حافظ امپراتوری بودند و به آن مشروعیت می‌دادند اما مردم ملزم نبودند از خدایان محلی و شعائر خود دست بردارند در بسیار موارد حاکمان امپراتوری خودشان خدایان و شعائر توده‌های مردم را می‌پذیرفتند رومیان با رقبت الهه آسیایی سایبل و الهه مصری آیسیس را به زیارتگاه اضافه کردند. تنها خدای رومیان تا مدتهای طولانی از مدارا کردن با آن سرباز میزدند خدای یگانه پرست و بشارت دهنده مسیحیان بود. امپراتوری روم، مسیحیان را ملزم به دست کشیدن از باورها و شعائر خود نمیکرد، اما از آنها انتظار داشت تا به علوهیت امپراتور و به خدایان محافظ امپراتوری احترام بگذارند. این برای امپراتوری به معنای اعلام وفاداری سیاسی بود، هنگامی که مسیحیان به شدت از این کار سر باز زدند و همه تلاش‌ها برای مصالحه را رد کردند، رومیان این را نشانه اقدام برای براندازی سیاسی قلمداد کردند و آنها را مورد تعقیب و آزار قرار دادند. اما آنها این کار را به طور جدی انجام نمی‌دادند. تایی سی سال از زمان تصریب مسیح تا مقطع ایمان آوردن امپراتور کنستانتین به مسیحیت، از دیات آزار عمومی مسیحیان توسط امپراتورهای رومی پر است از چهار مورد فراتر نرفت. مسئولین محلی و فرمانداران به ابتکار خود مواردی از خشونتهای ضد مسیحی را ترتیب دادند. اما باز هم اگر تمامی کشته های این پیگردها توسط تعدد پرستان رومی در این سه سده را جمع بزنیم به تعدادی در حدود چند هزار مسیحی می رسیم اما در مقابل تا یه دوره 1500 ساله بعدی مسیحیان به دلیل اختلاف برداشت های سطحی از دین عشق و شفقت یکدیگر را کشتار کردند جنگ‌های مذهبی میان کاتولیکا و پروتستان‌ها که در قرون 16 و 17 در اروپا جریان داشت، دارای برجستگی خاصی است. تمامی آنها که درگیر جنگ با هم بودند، به الوهیت مسیح و بشارت عشق و شفقت مسیحیت اعتقاد داشتند، اما درباره ماهیت این عشق با هم توافق نداشتند. پروتستان ها معتقد بودند که عشق الهی چنان عظیم است که خداوند در گوشت و خون تجسد یافت و اجازه داد تا مسلوب و شکنجه شود و از آن طریق تاوان گناه اولیه را بپردازد و درهای رحمت ملکوتی را به روی آنها که به او ایمان آوردند بگشاید. کاتولیک ها معتقد بودند که ایمان مهم است اما کافی نیست، برای ورود به بهشت، مؤمنین باید در مراسم کلیسا شرکت کنند و اعمال نیک انجام دهند. پروتستان ها این را قبول نداشتند و استدلال می کردند که این شرط دامنه عظمت و عشق خدا را محدود می کند. کسی که فکر می کند ورود به بهشت در گروه عمل نیک اوست در مورد اهمیت خود قلوف می کند و از اهمیت عذاب مسیح بر روی صلیب و عشق خدا می کهد. این جدارهای مذهبی در طی قرون 16 و 17 به چنان خشونتی بدل شد که کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها یکدیگر را در ابعاد صدها هزار می‌کشتند. در تاریخ 23 اوت 1572، کاتولیک‌های فرانسوی که بر اهمیت اعمال نیک تاکید داشتند، به مجامع پروتستان فرانسه که بر عشق خدا نسبت به بشریت اصرار می‌ورزیدند حمله کردند. در این حمله، معروف به روز قتل عام سنت بارتولومیو بین پنج تا ده هزار پروتستان ظرف کمتر از 24 ساعت قتل عام شدند. وقتی پاپ روم این خبر را شنید، چنان آکنده از شادی شد که جشن عبادی مفصلی تدارک دید و جورجی و واساری را معمور کرد تا یکی از تالارهای واتیکان را با نقاشی از این قتل عام آزین کند. این تالار اکنون به روی دیدار کنندگان بسته است. تعداد های مسیحی در طی تمام دوره حکومت امپراتوری رومی تعددپرست از تعداد مسیحیانی که ظرف آن 24 ساعت توسط همکیشان خود تلف شدند، کمتر بود. خدا یکی است. به مرور زمان بعضی از پیروان تعدد پرست، چنان شیفته خدای خاصی از میان خدایان خود شدند که از اندیشه بنیادی تعدد پرستی فاصله گرفتند و به تدریج به این باور رسیدند که خدایشان در حقیقت همان خدای واحد و قادر متعال جهان است. اما همزمان آن را خدای فرض کردند که دارای منافع و تمایلات است که میتوان با او معامله کرد. از این رو ادیان یگانه پرست که پیروانش قادر متعال جهان را سجده می کردند برای این به وجود آمده بود تا مردم را شفا دهد در بخت آزمایی برندهشان کند و در جنگ پیروزشان گرداند. اولین دین یگان پرست که میشناسیم در مصر 350 سال قبل از میلاد ظهور کرد یعنی زمانی که فرعون آخناتن اعلام کرد که خدایی به نام آتن در حقیقت همان قادر متعال حاکم بر تمامی جهان است که تا پیش از آن خدایی کوچک از مجموع خدایان مصر بوده آخناتن به پرستش آتن به عنوان دین دولتی رسمیت داد و تلاش کرد تا از پرستیدن همه خداهای دیگر ممانعت کند اما با این حال انقلاب دینی او ناموفق ماند. بعد از مرگ او، پرستش آتن کنار گذاشته شد و پرستش مجموعه خدایان قدیمی دوباره رایج شد. تعداد پرستی در ادامه منشاء زایش دیگر ادیان یگان پرست در نقاط مختلف شد. اما اینها در حاشیه باقی ماندند، از جمله به دلیل اینکه در تدوین پیام خود ناموفق بودند. برای مثال، یهودیت ادعا می‌کرد کرد که قادر متعال جهان دارای هواعج و امیال است و گرایش اصلیش معطوف به قوم کوچک یهود در خطه گمنام اسرائیل است. یهودیت امتیاز چشمگیری بر اقوام دیگر نداشت و در طی اکثر مدت زمان وجود خود دینی تبلیغی نبود. این مرحله می‌تواند مرحله یگان پرستی محلی نام بگیرد. تحول بزرگ با مسیحیت آمد این باور با ظهور یک فرقه اسرارآمیز یهودی آغاز شد که در جستجوی متقاعد کردن یهودیان به این بود که عیسی ناصره همان مسیح معود است که آنها مدت‌های طولانی در انتظارش بودند اما یکی از رهبران اولیه این فرقه به نام پولتارسوس میگفت که اگر قادر متعال جهان حوااج و امیالی دارد و اگر او در گوشت تجسد یافت و روی صلیب مرد تا بشریت را به رستگاری برساند پس این چیزی است که همه باید راجب آن بدانند نه فقط یهودیان بنابراین ضروری است که کلام نیکوی بشارت انجیل درباره عیسی در سراسر جهان رواج یابد. این استدلال طرفدار پیدا کرد و مسیحیان شروع به سازماندهی فعالیت های ترویجی گسترده خطاب به همه انسان‌ها شدند و این فرقه اسرارآمیز یهودی در یکی از عجیب ترین چرخش تاریخی بر امپراتوری مقتدر روم چیره شد. موفقیت مسیحیت تبدیل به الگویی برای دین یگانه پرست دیگری شد که در قرن هفتم در شبه جزیره عرب ظهور کرد و آن اسلام بود. اسلام هم همچون یک فرقه کوچک در گوشه دور افتادهی از جهان شکل گرفت اما به شکلی باز هم عجیبتر و در یک چرخش تاریخی غافل گیر کننده به گونه عمل کرد که از بیابانهای عربستان گسه است و بر یک امپراتوری گسترده از اقیانوس اطلس تا هند چیره شد. از آن به بعد تفکر یگان پرست نقشی محوری در تاریخ جهان ایفا کرد. یگان پرستان تمایلات بسیار متعصبانه و انگیزه های ترویجی بسیار قویتری از تعدد پرستان داشتند. دینی که حقانیت باورهای دیگر را به رسمیت بشناسد بر این امر سهمی گذارد که خدایش قادر متعال عالم نیست یا اینکه آن دین فقط بخشی از حقیقت عالمگیر را از خداوند دریافت کرده از این رو یگان پرستان معمولا معتقدند که خودشان مالک تمامیت پیام خدای واحد هستند و بنابراین این که بی اعتباری ادیان دیگر را نشان دهند در طی بیش از دو هزار سال، یگان پرستان مکررن تلاش کردند تا موقعیت خود را با خشونت و نابودی رقیبانشان تثبیت کنند. آنها موفق شدند. در ابتدای قرن اول میلادی به ندرت نشانی از یگان پرستان در جهان بود، در حدود سال 500 میلادی، امپراتوری روم به عنوان یکی از گسترده ترین امپراتوری ها یک حکومت مسیحی بود و مبلغین سخت مشغول ترویج مسیحیت به دیگر نقاط اروپا، آسیا و آفریقا بودند. در انتهای هزاره اول میلادی اکثر مردم اروپا، آسیای غربی و شمال آفریقا یگانه پرست بودند و امپراتوری ها از اقیانوس اطلس تا هیمالیا اعلام می که تحت فرمان یک خدای بزرگ واحد هستند. در اوایل قرن شانزدهم یگانه پرستی به استثنای آسیای شرقی و بخش جنوبی آفریقا بر اکثر آفراسیا حکومت می کرد و شروع به گسترش در جنوب آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه نمود. امروز اکثر مردم خارج از آسیای شرقی به این یا آن دین یگانه پرست و و نظام سیاسی جهانی بر اساس بنیادهای یگانه پرستانه بنا شده. اما همانطور که روحباوری در تعدد پرستی به بقایش ادامه داد، تعدد پرستی هم در یگان پرستی امکان بقا یافت. در عالم نظر اگر کسی اعتقاد دارد که قادر متعال عالم دارای امیال و تعصبات است، پس پرستش اقتدارهای کثرت چه امتیازی خواهد داشت؟ چرا به یک مأمور دونپایه مراجعه کنیم در حالی که در دفتر رئیس به روی مان باز است؟ در واقع، الهی شناسی یگان پرستان گرایش به این دارد که وجود تمام خدایان به جز قادر متعال را نفی و انکار کند و عذاب جهنم را نثار همه مشرکانی کند که آن خدایان دیگر را می‌پرستند. با این حال بین نظریه های خدا شناسی و واقعیت تاریخی فاصله بوده. اکثر مردم برای حضم و درک کامل اندیشه یگان پرستی با مشکل روبرو شوند. آنها در ادامه دنیا را به ما و آنها تقسیم کردند و قادر متعال را بسیار دور و بیگانه با خواستهای دنیویشان پنداشتند ادیان یگانه پرست خدایان را با حیاهوی زیادی از در بیرون میاندازند تا آنها را از پنجره به درون بکشند. به عنوان مثال، مسیحیت منظومه ای از قدیسان خود را به وجود آورد که آینهاشان تفاوت چندانی با آینه خدایان تعدد پرست نداشت. درست همانطور که خدای جوپیتر از روم دفاع کرد، هر پادشاه مسیحی هم قدیس حامی خودش را داشت که به آن در فائق آمدن به مشکلات و پیروزی در جنگ کمک میکرد. انگلستان در پناه جورج قدیس بود، اسکاتلند در پناه آنریوی قدیس، مجارستان در پناه استفان قدیس و فرانسه در پناه مارتین قدیس. شهرها، شهرکها، مشاغل و حتی امراض هر کدام قدیس خود را داشتند. شهر میلان آمروزه قدیس را داشت در حالی که مارک قدیس به ونیز نظر داشت. فلوریان قدیس از دودکش تمیزکنها حفاظت می کرد، در حالی که ماتیوی قدیس به هنگام پریشانی به یاری مأموران مالیات میشتافت اگر سردرد داری باید به درگاه آگاتیوس قدیس استغاثه کنی اما اگر از دندان ناراحتی به آپولونیای قدیس پناه ببر که شنونده خیلی بهتری است قدیسان مسیحی نه فقط شبیه همان خدایان تعدد پرست قدیمی بودند، بلکه اغلب صورتی مبدل از همان خدایان بودند. برای مثال، مهمترین الهه ایرلند سلتی قبل از حلول مسیحیت بریجید بود. وقتی ایرلند مسیحی شد، بریجیت هم غسل تعمید یافت و بریجیت قدیس شد که محترمترین قدیس ایرلند کاتولیک است. نبرد خیر و تعددپرستی پرستی نه تنها منشع پیدایش ادیان نگان پرست شد، بلکه همچنین ادیان دوگان پرست را هم آفرید. ادیان دوگان پرست پشتوانهی برای تکفین دو نیروی متخاسم شدند، خیر و شر. دوگان پرستی در تفاوت با یگان پرستی معتقد است که شر نیروی مستقل است که توسط خدای خیر آفریده نشده و از او پیروی نمی کند. دوگان پرستی استدلال می کند که تمام کائنات میان جنگ میان این دنی روست و تمامی اتفاقات در دنیا نمودی از این نبرد است. دوگان پرستی نظریه بسیار جذاب است زیرا پاسخی ساده و کوتاه بر معزل شناخته شده یه شر دارد که یکی از نگرانی های فکری بشر بوده. چرا در جهان شر وجود دارد؟ چرا عذاب وجود دارد؟ چرا برای انسانهای خوب اتفاقهای بد می‌افتد؟ برای توضیح این مسئله که چرا یک خدای دانا، قادر و سرچشمه همه خوبی ها اجازه می دهد که این همه رنج و مصیبت در جهان وجود داشته باشد، یگانه پرستان ناگذیرند تا به بندبازی های روشن فکران شوند؟ یکی از پاسخ‌های شناخته شده این است که این روش خداوند است تا به انسان اجازه انتخاب آزاد دهد. اگر شری در دنیا وجود نمی‌داشت، انسان‌ها نمی‌توانستند انتخابی میان خیر و شر داشته باشند و بنابراین آزادی انتخاب هم وجود نمی‌داشت. اما این یک پاسخ غیر شهودی است که بلافاصله کوهی از سوالات جدید را با خود به همراه می‌آورد. آزادی انتخاب به انسانها امکان می دهد تا شر را انتخاب کنند. در حقیقت بسیاری شر را انتخاب می کنند و بنابر حکایت مرسوم یگانه پرستی این انتخاب باید به عذاب اخروی منتهی شود. اگر خدا از قبل میدانست که فرد خاصی از انتخاب آزاد خود استفاده خواهد کرد تا شر را انتخاب کند و متعاقباً به خاطر آن در عذاب ابدی جهنم بسوزد پس چرا او را آفرید؟ خداشناسان کتاب های بیشماری نوشتهاند تا به این سال پاسخ دهند. گروهی این پاسخ را قانع کننده میدانند و گروهی هم نه. نکته غیرقابل این است که یگان پرستان در مواجهه با مشکل شر با چالش بزرگی روبرو هستند. توصیف شر برای دوگان پرستان آسان است. اتفاقات بعد حتی برای انسان‌های خوب هم رخ می‌دهد زیرا دنیا تنها توسط خدای خیر اداره نمی‌شود در دنیا یک نیروی مستقل شر هم پرسه می‌زند نیروی شر اعمال پلید انجام می‌دهد دوگان پرستی هم نقاط ضعف خود را دارد مشکل شر را از طرفی حل می‌کند اما از طرف دیگر با مشکل نظم روبرو می‌شود اگر دنیا توسط یک خدای واحد آفریده شده باشد، منطقی است که دنیا مکان منظمی باشد که از قوانین واحدی پیروی کند. اما اگر خیر و شر برای اعمال کنترل بر دنیا در ستیز باشند، پس چه کسی بر قوانین حاکم بر این جنگ آلمگیر اعمال قدرت می کند؟ دو دولت رقیب توانند با یکدیگر بجنگند به جنگ انزی هر دو از قانون مشترک فیزیک پیروی می کند. یک موشک پرتاب شده از پاکستان میتواند هدفهایی در هند را مورد حمله قرار دهد زیرا نیروی جاذبه در هر دو کشور به یک شکل عمل میکند وقتی خیر و شر با هم میجنگند از چه قوانین مشترکی پیروی میکنند و کدام یک از این دو قوانین را مقرر میسازند بنابراین آنجا که یگان پرستی نظم را توصیف میکند برای توصیف شر دچار آشفتگی میشود دوگان پرستی شر را توصیف می‌کند اما برای توصیف نظم دچاره سردرگامی می‌شود برای حل معما یک راه منطقی وجود دارد اینکه چنین استدلال کنیم که آن خدای قادر مطلق که تمامی کائنات را آفریده است شر است اما هیچکس در تاریخ جرأت چنین ادعایی را به خود نداده است ادیان دوگان پرست در حدود بیش از هزار سال قبل شکوفا شدند. زمانی بین هزار و پانصد هزار سال قبل از میلاد، پیامبری به اسم زرتوشت جایی در آسیای مرکزی فعال بوده. کیش او، آین زرتوشت، نسل به نسل انتقال یافت و جزو مهمترین ادیان دوگان پرست شد. زرتشتی ها دنیا را همچون نبردی جهانی میان خدای خیر، اهورا مزدا و خدای شر آنگراماینو را دیدند. انسان ها باید به خدای خیر در این نبردیاری می رساندند. تای دوره 330 تا 550 سال قبل از میلاد، دین زرتشت دینی مهم در تای دوران امپراتوری حخامنشی پارسی بود و بعدها بین سالهای 651 و 224 میلادی به دین رسمی امپراتوری ساسانی پارسی بدل شد. این دین نفوظ ای بر تقریبا تمامی ادیان خاورمیانه و آسیای مرکزی اعمال کرد و برای شماری از ادیان دوگانه پرست مثل ارفانیت و آیین مانی الهام بخش بود تی قرون سوم و چهارم میلادی آیین مانی تا چین و آفریقای شمالی رواج یافت و در مقطعی به نظر می رسید که برای تسلط بر امپراتوری روم از مسیحیت هم پیشی بگیرد اما هنگامی که آین مانی این نبرد را در تسخیر روح رومیان به مسیحیان باخت، امپراتوری زرتشتی ساسانی از یگان پرستان مسلمان شکست خورد و موج جنبش دوگان پرستی فروکش کرد. امروزه تنها تعداد محدودی از جوامع دوگان پرست در هندو خاور میانه باقی مانده. اما موج فزاینده یگان پرستی دوگان پرستی را از بین نبرد، یگانه پرستان یهودی، مسیحی و اسلامی تعداد بیشماری از روش‌ها و باورهای دوگان پرست را در خود جذب کردند و بعضی از پایعی ترین عقایدی که ما آنها را یگانه پرست میخوانیم در اصل و روح خود دوگان پرستند. مسیحیان، مسلمانان و یهودیان بیشماری به وجود یک اهریمن قدرتمند باور دارند شبیه به آنچه که مسیحیان آن را شیطان می‌خوانند که می مستقلانه عمل کند و بر علیه خدای خیر بجنگد و بدون اجازه خدا به ویرانی بپردازد. چطور یک گانه پرست می به چنین باور دوگان پرستی بچسبد که به هر حال جایی در کتاب عهد عتیق ندارد؟ این امر منطقا غیر ممکن است. خواه شما به یک خدای قادر مطلقمان داشته باشید یا به دو نیروی متخاسم هیچ کدام قادر مطلق نیستند. مردم هنوز قابلیت شگفتانگیزی برای پذیرش تضادها دارند. بنابراین نباید قافل گیر کننده باشد اگر میلیون ها مسیحی، مسلمان و یهودی وارسته همزمان به وجود یک خدای قادر متعال و یک شیطان مستقل باور داشته باشند. مسیحیان، مسلمانان و یهودیان بیشماری تا به آنجا پیشرفتند که تصور می کنند که خدای خیر حتی برای نبرد با شیطان احتیاج به کمک ما دارد. اندیشه ای که از جمله الهام بخش فراخوان جهادها و جنگهای های صلیبی بوده. یک درک کلیدی دوگان پرستی دیگر بل در عرفان و آیین مانی جدایی اکید میان جسم و روح و ماده و روان است. عرفا و ماناویان استدلال میکنند که خدای خیر روح و روان را آفرید در حالی که ماده و جسم آفریده خدای شر است. انسان بر اساس این نگرش میدان جنگی است میان روان پاک و جسم آلوده. از چشمنداز یگان پرستان این یک یاوه است. چرا باید چنین تمایز آشکاری میان بدن و روان یا ماده و روح باشد؟ و چرا باید استدلال کنیم که بدن و ماده پلیدند؟ روی هم رفته همه چیز توسط خدای واحد خیر فریده شده. اما یگانه پرستان به ناگزیر شیفته تقسیم بندی دوگانه دوگانه پرستان شدند، دقیقا به این دلیل که به آنها در حل مشکل شر کمک می کند. بنابراین چنین تناقضاتی احتمالاً بنیاد تفکر مسیحی و اسلامی باشد. باور بر بهشت، قلمروی خدای خیر و جهنم، قلمروی خدای شر در بنیاد خود دوگانه پرستانه است، در کتاب عهد عتیق ردی از این باور مشاهده نمی شود و در آن هیچ ادعایی مبنی بر این که روح انسان ها بعد از مرگ بدن به زندگی خود ادامه دهد وجود ندارد. یگان پرستی با توجه به نقش خود در تاریخ در حقیقت طیفی از میراث یگان پرستی، دوگان پرستی، تعدد پرستی و روح باوری بوده وزیر یک چتر واحد یزدانی در هم آمیخته شده. یک مسیحی معمولی همزمان به یک خدای یگانه پرست، به یک اهریمن دوگانه پرست و همچنین به قدیسان تعدد پرست و به ارواح روح باور اعتقاد دارد. محققین ادیان برای این باورهای مرکب متفاوت و حتی متناقض و آمیزش آین و عمل کردهای ملهم از منابع گوناگون نام سینکرتیزم یا منظومه باورها میگذارند سینکرتیسم می تواند در حقیقت همان دین جهانی واحد باشد. قانون طبیعت تمامی ادیان که تا اینجا مورد بحث قرار گرفت در یک ویژگی مهم با هم اشتراک دارند. همه آنها بر روی باور به خدایان و دیگر موجودهای ما برای طبیعی تمرکز دارند. این امر برای غربی ها که عمدتا با آین های یگان پرستی و تعدد پرستی آشنایی دارند روشن است. اما در حقیقت تاریخ دینی دنیا به تاریخ خدایان محدود نمی شود. تایه هزاره قبل از میلاد، ادیان کاملا جدیدی در آفرو آسیا شیو یافتند. ادیان جدیدی مثل جینیسم و بودیسم در هند، دین داؤیسم و آین کنفوسیوس در چین، و آینهای های رواقی کلبی و اپیکوری در حوزه مدیترانه با بی به خدایان مشخص میشوند این آینها معتقد بودند که نظم فوق بشری حاکم بر دنیا محصول قوانین طبیعی هستند نه ناشی از هوا و هوس های یزدانی تعدادی از این ادیان قوانین طبیعی به باور خود به وجود خدایان ادامه دادند اما اینها مانند انسانها، حیوانات و نباتات تابع قوانین طبیعی بودند. خدایان درست مثل فیلها و جوجتیقی ها جایگاه خود را در نظام زیست محیطی داشتند اما نمیتوانستند بیشتر از فیلها بر قوانین طبیعی تأثیر بگذارند. یک مثال بارز بودیسم است که مهمترین دین قوانین طبیعی در میان ادیان کوهن است و به عنوان یکی از های امده باقی مانده. چهره محوری بودیسم یک خدا نیست بلکه یک انسان است به نام سیدارتا گوتاما بر اساس سنت بودایی گوتاما وارث یک پادشاهی کوچک در حوالی 500 سال قبل از میلاد در هیمالیا بوده شاهزاده جوان عمیقا از رنج و مصائبی که در اطراف خود می‌دید متاثر می‌شد امیدید که مردها و زنها، کودکان و پیران همه فقط از سوانه مقطعی مثل جنگ و بیماری های همگیر در عذاب نیستند بلکه همچنین از استراب، درماندگی و نارضایتی هم رنج میبرند که همگی بخشی جدای ناپذیر از وضعیت انسان هستند. مردم به دنبال ثروت و قدرت هستند و علم و مالکیت می فرزند به دنیا می آورند، خانه و قصر می سازند. اما با این وجود هرگز به نشات دست نمی آبند. آنها که در فقر زندگی می کنند، آرزوی ثروت دارند. آنها که یک میلیون دارند، آرزوی دو میلیون می کنند. آنها که دو میلیون دارند، آرزوی ده میلیون می کنند. حتی ثروتمندان و مشاهیر به ندرت خوش آنها هم گرفتار اندوه و نگرانی هستند تا اینکه بیماری و پیری و مرگ نقطه پایان تلخی را بر زندگیشان بگذارد. هر آنچه انباشت اند دود می شود و به هوا می رود. زندگی یک دست و پا زدن باتل برای نیازهای روزمره است. اما چطور می توان از آن رها شد؟ گوتاما در سن 29 سالگی قصر، خانواده و مایملک خود را در یک نیمه شب ترک کرد و همچون یک خانه به دوش سراسر شمال هند را به دنبال راهی برای فرار از رنج زیر پا گذاشت. از معابد هندو دیدار کرد و از مرشدان هندو پیروی کرد اما هیچ کدام او را به طور کامل تسکین ندادند. او همواره اثری از, از نارضایتی را در خود احساس می کرد اما مایوس نشد. او به ابتکار خودش درباره رنج شروع به تحقیق کرد تا اینکه به روشی برای رهایی کامل دست یافت. گوتاما شش سال را برای تعمیق راجب ماهیت علت و علاج اندوه بشری سپری کرد و در آخر به این نتیجه رسید که علت رنج تغییر بی‌عدالتی اجتماعی یا هوا و های الهی نیست بلکه ناشی از الگوهای رفتاری ذهن هر انسان است نگرش گوتاما این بود که صرف نظر از اینکه تجربیات ذهنی ما چه باشند ذهن معمولا به ها واکنش نشان میدهد. حوث ها همواره ناخشنودی به همراه می آورند. هنگامی که ذهن چیزی ناخوشایند را تجربه می کند، می خواهد از آن خلاصی یابد. زمانی که ذهن چیزی خوشایند را تجربه می کند، می خواهد اش پایدار بماند و شدت یابد. از این رو، ذهن همواره نخوشنود و بیقرار است. این زمانی خود را به خوبی نشان می دهد که با تجربیات ناخوشایند مثل درد روبرو می شویم تا زمانی که درد ادامه دارد ناخشنودیم و برای رهایی از آن هر کاری می میکنیم اما وقتی تجربیات خوشایندی داریم باز هیچگاه راضی نیستیم زیرا یا میترسیم که خوشنودی ما از بین برود و یا اینکه میخواهیم که خوشنودی ما بیشتر شود مردم سالها آرزوی یافتن عشق را میکنند اما وقتی آن را میابند به ندرت راضیاند کسانی از این نگرانند که همسرشان ترکشان کند افراد دیگری هم هستند که احساس می کنند شایسته بودن با فرد بهتری هستند و همه ما افرادی از هر دو نوع را در اطراف خود می خدایان بزرگ می توانند برای ما باران بفرستند مؤسسات اجتماعی می توانند ادالت و سلامتی ما را تمین کنند و اتفاقات مثبت می توانند ما را میلیونر کنند اما هیچ کدام از اینها نمی توانند بنیان الگوهای ذهنی ما را تغییر دهند. به این ترتیب حتی بزرگترین شاهان به یک زندگی در استراب فرار مستمر از اندوه و نگرانی و جستجوی دائم برای لذت بیشتر محکومند. گتاما دریافت که راهی برای خروج از این دور باطل وجود دارد. زمانی که ذهن با چیزهای خوشایند یا ناخوشایند روبرو شود، آنها را به ای دریافت می کند که در واقع وجود دارند و این در خود آور نیست. اگر شما احساس اندوه می کنید بدون آنکه هوس دور کردن آن را داشته باشید در ادامه غمگین خواهید بود. اما این شما را عذاب نخواهد داد. در حقیقت در اندوه می تواند وجود داشته باشد. اگر شما احساس نشاط می کنید بدون آنکه حوث تداوم آن را داشته باشید یا بخواهید آن را افسایش دهید این احساس نشاط شما تداوم خواهد یافت بدون آنکه آرامش ذهنی خود را از دست بدهید اما چطور می توان ذهن را قانع کرد تا چیزها را آنطور که هستند بدون اشتیاق خاصی بپذیرد یعنی اینکه اندوه را به عنوان اندوه شادی را به عنوان شادی و درد را به عنوان درد بپذیرد گوتاما مجموعی از فنون مراقبه یا مدیتیشن را تنظیم کرد که ذهن را تمرین دهد تا بتواند واقعیت را آنطور که هست و بدون دخالت امیال و حوث تجربه کند. این روش ها ذهن را به گونه ای تمرین می دهند که تمامی توجه خود را بر مسئله الان چه چیزی را حس و تجربه می کنم معتوف کند نه اینکه چه چیزی را ترجیح می دهم تجربه کنم. رسیدن به این تحول ذهنی می دشوار باشد اما غیر ممکن نیست. گوتاما این فنون مراقبه را بر مجموعی از احکام اخلاقی استوار کرد تا برای مردم آسانتر شود که بر احساس واقعی تمرکز کنند و از هوسها و خیالات بپرهیزند. او به پیروانش میآمخت تا از کشتن، لاقیدی جنسی و دزدی دوری کنند زیرا چنین اعمالی لزوماً آتش حوث برای قدرت، لذت شهوانی یا ثروت را مشتعل می کند. وقتی شعله کاملا فروکش کند، یک وضعیت قناعت مطلوب و نیروانا جایگزین حوث خواهد شد. آنها که به نیروانا نائل می آیند، کاملا فارغ از هر عذابی هستند و واقعیت را با منتهای شفافیتش بری از خیالات و توهمات تجربه می کنند. حتی اگر آنها همچنان با ناخوشنودی و درد مواجه شوند، این تجربیات آنها را به نکبت در نمی غلطاند. فردی که اسیر حوث ها نمی شود، نمی تواند عذاب بکشد. بر اساس سنت بودیستی، گتاما خود به نیروانا نائل شد و کاملا از عذاب فارغ شد. از آن پس او به بودا شهرت یافت که به معنای فرهیخته است. بودا بقیه عمرش را صرف توضیح کشفیاتش کرد تا به دیگران بیاموزد چگونه خود را از درد برهانند. او آموزش هایش را در یک قانون واحد تدوین کرد. رنج از هوس برمیخیزد تنها راه برای رهایی از رنج مستلزم رهایی کامل از هوسهاست و تنها راه برای رهایی از ها تمرین دادن مغز است تا بتواند واقعیت را همانطور که هست دریابد این قانون معروف به دارما یا داما توسط بودیستها به عنوان قانون فراگیر طبیعت قلمداد شد اینکه رنج از هوس برمیخیزد همواره در همه جا صحت دارد همانطور که در فیزیک نوین ای همواره برابر با ام سی دو است. بودیست ها مردمی هستند که به این قانون وفادارند و آن را احرام تمام فعالیت هایشان قرار می دهند. از طرف دیگر اعتقاد به خدایان نزد آنها از اهمیت کمتری برخوردار است. اولین اصل دین یگان پرستی این است که خدا وجود دارد. او از من چه می خواهد؟ اما اولین اصل بودیسم این است که رنج وجود دارد. چطور میتوانم از آن برهم؟ بودیسم وجود خدایان را انکار نمی کند. آنها همچون موجودات توانایی توصیف شدند که میتوانند باران و پیروزی عطا کنند. اما هیچ نفوزی بر قانون رنج از هوس برمی ندارند. اگر ذهن فردی فارغ از حوث ها باشد، هیچ خدایی نمیتواند او را به تباهی بکشاند. بلعکس، هرگاه حوزها ذهن کسی را تسخیر کنند، تمام خدایان جهان هم نمی توانند او را از عذاب برهانند. اما ادیان قانون طبیعی پیشانوین مثل بودیسم در شباهت بسیار با ادیان یگان پرست، هرگز به واقع از پرستش خدایان سرباز نزدند. بودیسم مردم آموخت که در راستای هدف نهایی رهایی کامل از رنج تلاش کنند نه اینکه در میانه راه به کسب ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی بپردازند اما 99 درصد از بودیست ها به نیروانا دست نیافتند و حتی اگر امیدوار بودند که زمانی در آینده در طول زندگی چنین کنند زندگی زمان حال خود را عمدتا وقف کسب موفقیت های دنیوی کردند پس آنها در ادامه به پرستش خدایان گوناگون پرداختند مثل خدایان هندو در هند و خدایان شینتو در ژاپن علاوه بر این برخی فرقه های بودیستی به مرور زمان ای از خدایان بودا و بودیستوا یعنی بوداهای آینده را به وجود آوردند اینها موجوداتی انسانی و غیر انسانی هستند با قابلیت رسیدن به رهایی کامل از رنج اما نه رهایی از همدردی تا بتوانند به موجودات بیشماری که هنوز در دام چرخه تباهی گرفتارند کمک کنند. بسیاری از بودایی ها به جای پرستش خدایان شروع به پرستش این موجودات فرهیخته کردند و برای گرفتن کمک به آنها مراجعه کردند. نه فقط برای رسیدن به نیروانا بلکه همچنین برای روبرو شدن با مشکلات دنیوی به این دلیل بوداها و بودیستاف های بسیاری در سراسر آسیای شرقی وجود دارند که وقت خود را در ازای عبادت دریافت گلهای رنگارنگ، بخور معطر و هدایایی مثل برنج و نبات، صرف آوردن باران، متوقف کردن امراض و حتی پیروزی در جنگهای خونین می کنند. پرستش انسان سیصد ساله اخیر اغلب به عنوان اصر شکوفایی سکولاریسم توصیف شده، بدین معنی که ادیان به طور فضاینده اهمیت خود را از دست دادند. اگر منظور ادیان خداپرست باشد، این عبارت تا حدود زیادی درست است. اما اگر، ادیان قانون طبیعی را در نظر بگیریم دوران مدرنیته شاهد اشتیاق شدید دینی فعالیتهای ترویجی بیسابقه و خونینترین های مذهبی بوده اصر نوین گواه ظهور شماری از خدایان جدید قانون طبیعی مثل لیبرالیسم کمونیسم کاپیتالیسم ناسیونالیسم و نازیسم بوده این آینها تمایل ندارند دین خوانده شوند و نام ایدئولوژی بر خود میگذارند اما این فقط یک تعبیر لغوی است اگر یک دین نظامی است از هنجارها و ارزشهای بشری مبتنی بر اعتقاد به نظم فوق بشری پس شوروی کمونیستی به اندازه اسلام دین محسوب میشد اسلام طبعاً با کمونیسم تفاوت دارد زیرا اسلام معتقد است که نظم فوق بشری حاکم بر جهان تحت فرمان یک خدای آفریننده قادر متعال اداره می شود در حالی که شوروی کمونیستی به خدایان اعتقاد نداشت. اما در بودیسم هم خدایان نقش چندانی بازی نمی کنند. با این وجود ما آن را در شماره ادیان قرار می دهیم. ها همچون بودیست معتقد به یک نظم فوق بشری قوانین طبیعی بودند، که میبایست راهنمای رفتار بشری باشد. بودیست ها معتقدند که قانون طبیعت توسط سیدارتا گوتاما کشف شد و کمونیست ها میگویند که قانون طبیعت توسط کارل مارکس، فردریش انگلز و ولادیمیر میریلیچ لنین کشف شد. شباحت ها اینجا تمام نمیشود، کمونیسم مثل ادیان دیگر متون مقدس و نظریات پیشگویانه خود را دارد مثل کتاب سرمایه که مارکس در آن فرجام تاریخ را با پیروزی اجتناب ناپذیر پرولتاریا در آینده نزدیک بشارت میداد کمونیسم روزهای مهم و جشن خود را داشت مثل روز اول ماه و سالگرد انقلاب اکتبر نظریه پردازان دینی خود را داشت که متخصصین دیالکتیک مارکسیستی بودند و هر واحدی در ارتش شوروی یک برگزیده به نام کمیسر داشت که ناظر بر سلامت فکری سربازان و افسران بود. کمونیسم شهدا جنگ‌های مقدس و مرتدان خود را هم داشت. کمونیسم شوروی دینی متعصبانه و تبلیغی بود. یک کمونیست معتقد توانست مسیحی یا بودیست باشد و از او انتظار می‌رفت تا به تبلیغ پیام مارکس و لنین بپردازد حتی اگر این به بهای زندگیش تمام شود شاید بعضی از خوانندگان با این شیوه استدلال نامنوس باشند اگر حس بهتری پیدا می‌کنید که کمونیسم را به جای دین ایدولوژی بخوانید آزادید فرقی نمی نمی‌کند ما می توانیم آین ها را به ادیان خدا محور و ایدئولوژی های بی خدا تقسیم کنیم که ادعا می کنند بر پایه قوانین طبیعی قرار دارند اما برای حفظ پیوستگی در بحث نیازمندیم حداقل بعضی از فرقه‌های بودایی، تائو و رواقی را به عنوان ایدئولوژی بندی کنیم ندین؟ از طرف دیگر باید اشاره کنیم که اعتقاد به خدایان در بسیاری از ایدئولوژی‌های نوین باقی مانده و اینکه تعدادی از آنها به ویژه لیبرالیسم بدون وجود باور به خدا تقریبا بی‌معنا هستند. بررسی تاریخ تمامی این آینهای نوین در اینجا محال است به ویژه از این رو که مرز روشنی میان آنها وجود ندارد. آنها هم مثل باورهای یگان پرست و بودیسم متداول ملقمه از افکار و باورها هستند. درست همانطور که یک بودیست میتواند خدایان هندو را بپرستد و درست همانطور که یگان پرست می به وجود شیطان باور داشته باشد. آمریکایی معمولی امروزی هم همزمان یک ناسیونالیست است یعنی به وجود ملت آمریکا با رسالت خاص تاریخی باور دارد، کاپیتالیست بازار آزاد است یعنی به رقابت آزاد و پیروی از منافع شخصی به عنوان بهترین راه برای رسیدن به یک جامعه موفق باور دارد و یک انسانگرای لیبرال است یعنی باور دارد که خداوند انسانها را با حقوق غیرقابل قابل انکار آفریده ناسیونالیسم در فصل 18 مورد بحث قرار گرفته فصل شانزده به طور کامل به بررسی نظام سرمایه یا کاپیتالیسم به عنوان موفق ترین دین در میان ادیان نوین می پردازد و مفصلا اصول اعتقادی و آداب آن را تشریح می کند. در صفحات باقی از این فصل به عدیان انسانگرا اشارهی خواهم داشت. عدیان خداپرست تمرکز خود را بر پرستش خدایان می گذارند. ادیان انسانگرا بشریت یا صحیح در انسان خردمند را ستایش می کنند. انسانگرایی یا همان هیومنیزم است که بر اساس آن انسان خردمند دارای یک ذات مقدس و یگانه است که اساساً متفاوت از ماهیت تمامی حیوانات و پدیده های دیگر است. انسان گرایان معتقدند که ذات یگانه انسان خردمند مهمترین چیز در دنیاست و همین ذات یگانه بشری است که معنای هر چیز را که در کائنات رخ میدهد تعیین میکند. خیر اعلی هر آن چیزی است که برای انسان خردمند خوب باشد بقیه دنیا و تمامی موجودات دیگر فقط به این دلیل وجود دارند که در اختیار منافع این گونه زیستی باشند تمام انسانگرایان انسانیت را ستایش می کنند، اما در برداشتشان با هم توافق ندارند. انسانگرایی به سه فرقه رقیب تقسیم شده که بر سر توصیف دقیق انسانیت با هم در ستیزند درست مثل فرقه های متخاسم مسیحی که برای توصیف دقیق خدا با هم می جنگیدند. امروزه مهمترین فرقه انسانگراه، انسانگرا انسانگرایی لیبرال است که معتقد است که انسانیت کیفیتی است که از افراد انسانی سرچشمه میگیرد و از این رو آزادی فرد تقدس دارد. بر اساس نظریه ی لیبرال ها ذات مقدس بشری در کنه وجود تک تک افراد انسان خردمند نهفته است. هسته درونی فردی انسان ها به جهان معنا می و منبع تمامی اقتدارهای اخلاقی و سیاسی است. وقتی با یک تردید اخلاقی یا سیاسی مواجه می میباید به درون خود مراجعه کنیم و به ندای بشری در درون خود گوش فرادهیم. احکام و فرامین اصلی انسانگرایی لیبرال دفاع از آزادی ندای درون و مقابله با نقض و آن است، مجموعه این احکام حقوق بشر خوانده می شود. به این دلیل است که لیبرال ها مثلا مخالف شکنجه و مجازات مرک هستند. قاتلین در ابتدای اروپای نوین در شمار عاملین بی و نقص کنندگان نظام جهانی به شمار می آمدند. برای برقراری تعادل نظم دنیا ضروری بود تا قاتلین شکنجه و در ملع عام اعدام شوند تا همه ببینند که صبات به جهان بازگشته ترتیب مراسم مخوف اعدام یک سرگرمی دلپذیر برای لندنی ها و پاریسیهای دوران شکسپیر و مولیر بود در اروپای کنونی قتل به عنوان خشونت علیه ذات مقدس بشری قلمداد داد می شود های امروزی مجرمین را برای بازگرداندن نظم و ثبات شکنجه و اعدام نمی‌کنند بلکه قاتلین را به انسانی‌ترین شکل ممکن مجازات می‌کنند تا تقدس انسانی او را تضمین و حتی بازآفرینی کنند. تقدس انسانی با احترام به ذات انسانی قاتلین برای همگان یادآوری می‌شود و نظم باز می‌گردد. ما با دفاع از قاتل اشتباهی را که او مرتکب شده تصحیح میکنیم. اگرچه انسانگرایی لیبرال انسان‌ها را می میکند ولی وجود خدا را انکار نمیکند و در حقیقت بر بنیادهای باورهای یگان پرست بنا شده. اعتقاد لیبرال به مقدس بودن و آزاد بودن ذات هر فردی یک میراث مستقیم از باور سنتی مسیحی به روح آزاد و جاودانی فرد است. لیبرال برای توضیح ویژه بودن انسان خردمند بدون توصل به روح جاودانی و خدای آفریننده با مشکل روبرو میشوند. فرقه مهم دیگر انسانگرایی سوسیالیست است. سوسیالیست باور دارند که انسانیت نه یک مقوله فردی بلکه اشتراکی است. آنچه که برای اینها تقدس دارد، نه ندای درونی هر فرد، بلکه گونه انسان خردمند به عنوان یک کل است. در حالی که انسانگرای لیبرال در جستجوی حد اکثر آزادی فردی ممکن برای انسان هاست، انسانگرای سوسیالیست در پی تحقق برابری میان تمامی انسان هاست. بر اساس نظریه سوسیالیست ها نابرابری بزرگترین توهین به تقدس بشری است زیرا کیفیت های حاشیه ای انسان ها را بر ذات تمامیتگرای آنها ترجیح می دهد مثلا وقتی ما جایگاه بالاتری را برای غنی در برابر فقیر در نظر می گیریم با این کار ارزش پول را بر ذات فراگیر تمامی انسان ها که برای فقیر و غنی یکیست ترجیح می دهیم انسانگرایی سوسیالیستی مثل انسانگرایی لیبرال بر پایه یگان پرستانه بنا شده. این نظریه که همه انسانها برابرند یک نسخه نوسازی شده ی اعتقاد یگانه پرستانه است که می گوید تمامی روان در پیشگاه پروردگار با هم برابرند. تنها فرقه انسانگرها که به واقع از یگان پرستی سنتی گسسته، انسانگرایی تکاملی است که معروف ترین نمایندگانش نازی هستند. آنچه که نازی را از سایر فرقه های متمایز می کرد، یک توصیف متفاوت از انسانگرایی بود که امیغن متأثر از نظریه تکامل است. نازیها در تضاد با دیگر انسانگرایان معتقد بودند که بشر موجودیتی جهانی و جاودانی نیست بلکه گونه ای تغییر تغییرپذیر است که میتواند متحول شود یا تنزل یابد. می تواند به فوق بشر ارتقا یابد یا به مادون بشر تنزل پیدا کند. هدف اصلی نازیها محافظت از انسان در برابر سقوط او و تقویت پیشرونده تکاملی او بود. از این رو بود که نازه ها می گفتند که نژاد آریایی به عنوان پیشرفت ترین گروه انسانی می مورد حمایت قرار گیرد و پرورش یابد و به موازات آن دیگر گروه های انسان خیردمند مثل یهودیان، رومیان، همجنسگرایان و بیماران مغزی می در قرنطینه قرار بگیرند و حتی منقرض شوند. نازیها استدلال می کنند که انسان خردمند خود به عنوان یک گروه انسانی برتر از درون انسان های کوهن تحول یافت در حالی که گروه های پستر مثل نیاندرتال ها یافتند. این گروه های متفاوت در ابتدا چیزی به جز نژادهای مختلف نبودند اما مستقلن در راستای مسیر تکاملی خود تکامل یافتند. این امر می باز اتفاق بیفتد. بر اساس تفکر نازی، انسان خردمند به چندین نژاد مستقل تقسیم شده که هر کدام کیفیت‌های خاص خود را دارند. یکی از این نژادها نژاد آریایی است که عالی ترین کیفیت‌ها را دارد، مثل اقلانیت، زیبایی، کمال و پشتکار. از این رو نژاد آریایی قابلیت ارتقاء انسان به عبر انسان را دارد. نژادهای دیگر مثل یهودیان و سیاهان نیاندرتال های امروزی هستند و از قابلیت های برخوردارند. اگر به اینها اجازه داده شود تا نژاد خود را تکثیر کنند و به خصوص با آریایی ها میزش کنند، موقعیت کل انسان را به خطر خواهند انداخت و آنگاه انسان خردمند محکوم به زوال خواهد شد. زیستشناسان از آن به بعد نظریه نژادی نازی ها را کردند. به ویژه تحقیقات ژنتیک بعد از 1945 میلادی نشان دادند که تفاوتهای میان شاخه های مختلف انسانی کوچکتر از آن است که نازیها ادعا می کنند. اما این دستاوردها نسبتاً نسبتا جدیدند. با عظیمت از سطح دانش علمی در سال 1933 باورهای ها به سختی از آن مرزها فراتر رفته بودند. اعتقاد به وجود نژادهای انسانی متفاوت، برتری نژاد سفید و لزوم حمایت و پرورش این نژاد برتر در میان طبقات بالایی اروپایی رواج داشت. گروه های تحصیل کرده در معتبرترین دانشگاه های غربی با اتکاب روش های علمی ارتودکس مربوط به آن زمان تحقیقاتی را انتشار میدادند که مدعی بود که اعضای نژاد سفید با هوشتر تر، اخلاقی تر و با مهارت از آفریقایی ها و سرخپوستها هستند. سیاست مداران لندن و کامبرا رسالت خود را جلوگیری از آمیزش نژادی و انحطات نژاد سفید میدانستند. مثلا از طریق محدود کردن مهاجرت چینی ها و حتی ایتالیاییها به کشورهای آریایی مثل آمریکا و استرالیا. این نقطه نظرات فقط به این دلیل که تحقیقات علمی جدید منتشر شدن تغییر نکردند. پیشرفت در جامعه شناسی و سیاست، ابزارهای بسیار قدرتمند تری برای تغییر بودند و به این معنا که هیتلر نه تنها گور خود را، بلکه همچنین گور نجاد را در کلیتش کند. وقتی او جنگ جهانی دوم را به راه انداخت، دشمنانش را وادار کرد تا تقسیم بندی های اکیدی میان ما و آنها ایجاد کنند، بعدها درست به این دلیل که ایدئولوژی نازی ها بسیار نژادپرستانه پرستانه بود، نژادپرستی اعتبار خود را در قرب از دست داد. اما این تغییر به طول انجامید. حداقل تا سالهای دهی 1960، برتری نژاد سفید یک جریان ایدئولوژیک اصلی در آمریکا بود. سیاست استرالیای سفید که مهاجرت غیر سفیدها به استرالیا را محدود می کرد تا سال 1973 در قدرت بود. بومی های استرالیا تا ده 1960 حقوق سیاسی برابر نداشتند و اکثرشان از شرکت در انتخابات من میشدند. زیرا، آنها را فاقد توانایی برآمدن از عهده وظایف شهروندی می دانستند. نازیها از انسانیت نفرت نداشتند. آنها دقیقاً به منظور ستایش انسانیت و اعتقاد به قابلیت والای گونه انسانی با انسانگرایی لیبرال و حقوق بشر و کمونیسم در ستیز بودند. اما با پیروی از منطق تکاملی داربینی چنین استدلال می کردند که باید راه را انتخاب طبیعی باز کند، افراد نامناسب را تصویه کند و بگذارد تا فقط مناسب ترین ها به بقا و تولید ادامه دهند. لیبرالیزم و کمونیسم با حمایت از ضعیف ها نه تنها موجب بقای عناصر نامناسب می شوند بلکه موقعیتی را برایشان پراهم می آورند تا به باز تولید خود ادامه دهند و به این شکل فرایند انتخاب طبیعی را تضعیف کنند. در چنین دنیایی مناسبترین انسانها به ناگزیر در دریایی از نامناسبها رو به انقراز می روند و بشریت با گذشت هر نسل بیش از پیش تناسب خود را از دست می دهد و این او را به انقراز میکشاند. یک کتاب زیستشناسی آلمانی منتشر شده در سال 1942 در فصل قانون طبیعت و بشریت توصیف می که قانون عالی طبیعت این است که تمام موجودات در هیته نبرد ظالمانه برای بقا هستند. این کتاب پس از توصیف اینکه چگونه نباتات برای قلم را مبارزه می کنند، چگونه سوسکها برای یافتن همسر مبارزه می کنند و موارد شبیه به این ادامه می دهد. مبارزه برای حیات سخت و بیرحم است، اما تنها راه برای حفظ زندگی است، این مبارزه هر چیزی را که برای زیستن نامناسب است از سر راه بر می دارد و موجوداتی را که قادر به بقای خود هستند انتخاب می کند. قوانین طبیعی بیچون و چرا هستند. موجودات زنده صحت این قوانین را با بقای خود به نمایش می گذارند. این قوانین بی رحمانه هستند و آنهایی را که در برابرشان قرار می گیرند، از میان برمیدارند. زیستشناسی نه تنها درباره حیوانات و نباتات به ما میگوید بلکه همچنین قوانینی را به ما نشان میدهد دهد که باید در زندگی از آنها پیروی کنیم و اراده ما را مستحکم میکند که در هماهنگی با آنها زندگی کنیم و بجنگیم. مفهوم زندگی نبرد است. وای بر کسی که این قوانین را زیر پا بگذارد. سپس نقلی از کتاب نبرد من میآید. کسی که سعی میکند بر علیه منطق آهنین طبیعت بجنگد بر علیه اصول میجنگد که باید برای زندگی چون یک انسان سپاسگزارشان باشد جنگیدن بر علیه طبیعت به معنی تدارک انقراض خود است آینده انسانگرایی تکاملی در آغاز هزاری سوم ناروشن است تاییه شست سال بعد از پایان جنگ علیه هیتلر مربوط کردن انسانگرایی با تکامل و دفاع از استفاده از روش های زیستشناسانه برای متحول کردن انسان خردمند من و تابو بوده. اما امروزه چنین پروژه هایی دوباره جان گرفته. کسی راجع به انقراض نژادها یا مردم پستر صحبت نمی کند؟ اما بسیاری در نظر دارند که از دانش فضاینده درباره باره زیستشناسی انسانی برای خلق عبر انسان استفاده کنند. همزمان شکاف عظیمی میان آموزش های انسانگرایی دیبرال و آخرین یافته های علوم زیستی ایجاد شده. شکافی که دیگر نمی انکارشان کنیم. نظام سیاسی لیبرال و غذایی ما بر اساس این باور پایگذاری گذاری شدند که هر فردی دارای یک ذات درونی مقدس، تجزیه ناپذیر و خچ نپذیر است که به دنیا معنی می دهد و سرچشمه تمامی اقتدارهای سیاسی و اخلاقی است. این تجلی باور مسیحیت سنتی است که بر اساس آن یک روح آزاد و جاودانی در درون هر فردی نهفته است. اما تایید ویساله اخیر علوم زیستی این باور را از درون توهی کردند. محققین با مطالعه کارکردهای درونی بدن انسان نشانی از روح در آن نیافتند. آنها به طور فزاینده استدلال می‌کنند که رفتار انسانی توسط هورمون‌ها، ژنها و سیناپس‌های عصبی تعیین می‌شوند نه با انتخاب آزاد. یعنی همان نیرویی که رفتار شامپانزه ها،, گرگ ها و موریانه ها را تعیین می کند. نظام های سیاسی و غذایی ما وسیعا در تلاشند تا چنین کشفیات آزارنده ای را از دور خارج کنند. اما اگر بخواهیم صادق باشیم، تا کی خواهیم توانست دیواری را که حوزه زیستشناسی را از حوزه قانون و علوم سیاسی جدا می حفظ کنیم؟